به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام عرض ادب خدمت همه همراهان محترم با شما هستیم با یک دیگه از داستانهای کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران و اما این داستان جام و آینه و پنبه پادشاهی بود که پسر نداشت روزی به توصیه وزیر رمالی آوردند تا رمال ببینه اشکال کار کجاست رمال رمل انداخت و گفت ای پادشاه برای اینکه پسردار بشی باید با دختر وزیر ازدواج کنی وقتی پسرت به دنیا اومد اسمش رو جهانگیر بذار پادشاه با دختر وزیر ازدواج کرد و بعد از دو سال پسرش به نام جهانگیر به دنیا اومد چندی گذشت برای جهانگیر معلم گرفتن تا درس بخوند پادشاه دستور داد که پسر رو به زیر زمین ببرند و اونجا درس بدن تا زمان پادشاهیش برسه مدتی گذشت روزی معلم وقتی از زیر زمین بیرون میرفت فراموش کرد که پنجره رو ببنده جانگیر دید که از پنجره نوری میاد دست دراز کرد تا نور رو بگیره دید که نمیشه از زیرزمین بیرون اومد و رفت توی بازار و چون راه و رسم زندگی مردم رو بلد نبود هرچی خوردنی جلوی مغازه ها می دید می خورد و ظرف ها رو می شکست. مردم جهانگیر رو کتک زدند. معلم رفت توی زیرزمین دید که جهانگیر نیست. دنبالش گشت و در بازار اون رو پیدا کرد و از دست مردمی که داشتن اون رو کتک می زدن نجاتش داد. روزی جهانگیر به معلم گفت مگه پسر پادشاه به گردش نمیره معلم رفت به پادشاه گفت که جهانگیر احتیاج به گردش داره یک روز جهانگیر با وزیر و چند سرباز برای شکار از قصر خارج شدند اونها رفتند و رفتند تا به صحرایی رسیدن. آهوی ظاهر شد قرار گذاشتند که آهو از جلوی هر کسی رد شد اون با تیر بزند تش آهو رو دوره کردند آهو از جلوی پسر پادشاه رد شد و پسر اون رو تعغیب کرد آهو به جلو و جهانگیر به دنبالش رفتند و رفتند تا به میدونگاهی رسیدند چادری اونجا برپا بود پسر که خسته بود از از پیاده شد و جلوی چادر رفت یک چوبان و یک دختر اونجا بودن جهانگیر به دختر گفت کمی آب بده بخورم دختر رفت و یک پیاله آب گلالود آورد پسر اون رو دور ریخت دختر یک پیاله آب نیمه گلالود آورد پسر اون هم دور ریخت بار سوم دختر یک پیاله آب صاف آورد جهانگیر گفت چرا از اول این آب رو نیاوردی؟ دختر گفت مخصوصاً این کارو کردم تا عرق تنت خشک بشه بعد آب بخوری همین که جهانگیر کاسه آب رو برداشت دختر سیلیه محکمی توی گوش اون زد و گفت جام و آینه و پنبه جهانگیر از حال رفت اما بشنوید از وزیر هرچی منتظر شدن دیدن که از جهانگیر خبری نیست پادشاه هم سفارش کرده بود که اگر یه مو از سر پسرم کرد بشه دودمانش رو به باد میدم. وزیر برای پیدا کردن جهانگیر به راه افتاد. رفت و رفت تا اون رو بیهوش روی زمین پیدا کرد. جهانگیر به هوش اومد و گفت جام و آینه و پنبه و باز از حال رفت. وزیر دید که خیر شاهزاده به هوش اومدنی نیست. هزار زحمت اون رو انداخت روی اسب و به قصر برد به پادشاه خبر دادن که چه نشستی که پسرت بیمار شده پادشاه وقتی پسرش رو توی اونها لید به وزیر گفت دستم به دامنت کاری بکن طبیبان رو حاضر کن وزیر هر طبیبی که به بالین پسر آورد نتونست کاری انجام بده همه شهرها رو گشتند و هر جا طبیبی سراغ داشتند، رفته بودند سراغش. اما حال پسر همون بود که بود. وزیر ناامید شد تا اینکه که شنید در شهری طبیبی هست که درمان پسر پادشاه به دست اون هست. این بود که اسباب سفر رو آماده کردند و رفتند تا به اون شهر رسیدند. دید پسرک کچلی با چند تا بچه داره گردو بازی میکنه و از همه می بره. وزیر خواست از اسب پیاده بشه. کچل گردویی نشونه گرفت و گفت این رو هم زدم به خاطر وزیر. این حرف به وزیر برخورد. گفت کچلک تو چی که به من توهین میکنی؟ می کنی؟ کچل گفت هر کاره و هر کی هستم. میدونم که گیره کار تو به دست من باز میشه. وزیر فهمید که پسرک یک کچل معمولی نیست و گفت نوی من که پسر پادشاه مریض شده اومدم طبیب ببرم. کچل کلاهش رو از سر داشت و جلوی وزیر گفت کلاهم رو پر از پول کن تا خرجی مادرم جور باشه. اون طبیبی هم که تو میخوای من هستم. وزیر کلاه کچل رو پر از پول کرد. اون هم پول ها رو برداشت و پیش مادرش برد و از اون خداحافظی کرد و پیش وزیر رفت. به وزیر گفت لباسات رو با لباسای من عوض کن. وزیر هم اطاعت کرد. بعد هم کچل سوار اسب شد و به وزیر گفت تا پیاده دنبال من بیا. حرکت کردند، رفتند و رفتند تا به شهر رسیدن و از اونجا هم به قصر پادشاه. پادشاه تا چشمش به کچل افتاد، چپکی به وزیر نگاه کرد و گفت این همه طبیب حاضق اومدن و نتونستن کاری بکنن. اون وقت تو رفتی اون کچل من آوردی؟ کچل در اومد و جواب پادشاه رو بده، وزیر نگذاشت. کچل و وزیر رفتن به بالین شاهزاده. کچل یه سیلی محکم خوابون بیخ گوشه جهانگیر گفت جام و آینه و پنبه اومد جهانگیر حاج و واج کار کچل بود که شنید تو مثلا پسر پادشاهی و قرار به تخت پادشاهی بشینی اون وقت به خاطر عشق روزگار خودت رو سیاه کردی؟ اینگر سخت نگیر جهانگیر ماجرای خودش رو برای کچل تعریف کرد کچل گفت دختر وقتی گفته جام و آینه و پنبه نشونی خونه خودش رو داده اسم کوچه کوچهی پنبه زنه که در راسته جامسازهاست و این یکی هم در راسته آینه سازها قرار داره حالا هفت قطار لعل و جواهر بار کن تا به اون شهر بریم سفارش دیگری هم به جهانگیر کرد هر اونچه که کچل خواسته بود مهیا شد و دو همسفر حرکت کردند. رفتند و رفتند تا به اون شهر رسیدند و به کوچه پنبه زن رسیدند. کچل لباس فاخری بتن کرد و در خونه پیرزنی رو زد. کیسه ای پول به پیرزن داد و گفت به خونه زن برو و به دخترش همون که عروس پادشاهه بگو جام و آینه و پنبه اومد. پیرزن رفت و هر چی که به اون گفته بودن به دختر گفت. دختر تا حرفای پیرزن رو شنید فریاد زد چوب انگور سون رو بیارید که میخوام این پیرزن رو تنبیه کنم. پیرزن فرار رو به قرار ترجیح داد و گریخت و پیش کچل اومد که خودش رو ملک تجار رومی معرفی کرده بود و همه چیز رو براش تعریف کرد. نیمه های شب ملک تجار رومی و جهانگیر به باغ انگور رفتن. ملکت جار رومی جهانگیر رو از سوراخ راه آب توی باغ فرستاد. جهانگیر مدتی توی باغ قدم زد اما از دختر خبری نشد. خونه ای میونه باغ بود و جهانگیر به اون خونه رفت و اونجا خوابید. دختر اومد و جهانگیر رو در خواب دید. دوتا گردو تو جیبش گذاشت و رفت. یعنی هنوز بچه و غورو گردو بازی تو بکن. صبح وقتی ملک تجار رومی فهمید که جهانگیر نتونست دختر رو ببینه و بعد هم گردوها رو توی جیب جهانگیر دید اصابانی شد و کدک مفصلی بیزد باز هم ملک تجار پولی به پیرزن داد و اون رو سراغ دختر پنبه زن فرستاد. پیرزن پول رو گرفت و به خونه زن رفت و بعد از اینکه شامش رو خورد به دختر گفت جام و آینه و پنبه اومد دختر گفت چوب آلبالو سون رو بیارید پیرزن فوری فرار کرد و پیش ملک تجار رومی رفت و اون که گذشته بود براش تعریف کرد ملک تجار به جهانگیر گفت دختر قراره امشب رو توی باغ آلبالو گذاشته و به اونجا برو جهانگیر به باغ آلبالو رفت باز مثل شب پیش خوابش گرفت و صبح دست از پا برگشت برای بار سوم ملک تجار پولی به پیرزن داد و اون رو به خونه دختر پنبه زن فرستاد. وقتی پیرزن از اونجا برگشت و غذایا رو برای ملک تجار تعریف کرد و گفت که دختر برای زدنش چوب سیبستان رو خواسته، فهمید که جهانگیر باید به باغ سیب بره. دوتا تا گوهر شب چراغ به جهانگیر داد و گفت: امشب شب آخره و اگر باز هم بخوابی دیگه به مرادت نمیرسی. از سیبای باغم نخور که خوابت میگیره. سفارش دیگری هم به اون کرد. شب وقتی جهانگیر از سوراخ میخواست داخل باغ بشه ملک دوجار بدون اون که اون بفهمه یک گوهر چراغ از جیبش برداشت. جهانگیر داخل باغ شد. بعد از مدتی خواست که با اون گوهرهای چراغ بازی کنه دست به جیب برد و دید که یکی بیشتر نیست. خواب از کلش پرید. لحظه بعد دختر اومد اونها با هم به پیش ملک تجار رومی رفتند. ملک تجار دختر رو سواره شطور کرد و با جهانگیر به طرف شهر خودشون حرکت کردند. وقتی پدر جهانگیر فهمید که پسرش از سفر برگشته خیلی خوشحال شد و هفت شبان روز جشن عروسی جهانگیر و دختر پنبهزن رو براه انداختند خب؟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 قصرهای باشکوه و, و مهمانیهای بزرگ شاهانه هایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر ها و شاهان با اسفهای تندرو و جادویی به های ناشناخته